بر برای زد بر زمین همی خان و کردگاه آفرین خروشی برآمد از ایران سپاه تبیر زنان برگرفتند گرفتن و وقتی که وقتی که صد د ری که انسان روانش پرواز میکنیم من اینا در و در تجلیستان و در بخار ها دیدم.ف دختر این ج واقعا هیچ موسیقی اینقدر انگیزور ب نیست و همین دلیل که در جنگ از این کار استفاده میکردن برای که سپاهیان تحییش بکنند. خلاف یونانیان و رومیان که آواهای خیلی زهر و گین که خیلی ترساننده بود اینها و کسانی که میزدند، شوی خودشون با غیر میکردن که خودشون نشنبن و ترس به دل دشمن راه میداختن در ایران نه در ایران این دوست رو به حرکت میوردن یعنی سپاهیان ایران رو به حرکت بر خروشی برآمد از ایران سپاه طبیعی زنان برگرفتند راه چون این گفت پیران به افراسیان که شد روی گیتی چه آب ز دریاه و دشت و, و کوه سپاه در آمد همه هم گروه چون مردم نموند آزمودیم دین ببینید باز اینجا دوین قیلی کوه رو دارن میگن کوهی بوده که ایرانیان سپاه ایران باید از این کوه اوبور میکردن پیروز این چون مردم نمان آزمودیم دیو، چون این جنگ و پیکار و چندین خریف سطح را چنین صف کشیده بمان تو با ویژهان سوی دریا بران. یعنی بگریز، گریز. دیگه جای درنگتونیست. درفشش میموندند او خود برد. یعنی گذاشتند. او خود برد. سوی چین و ماچین شتابی تفت. سپاه در آمد پیش سپاه زمین گشت برسان عبر سیاه. اینجا مهمترین بخش این داستانه که میبینید که ایرانیان وقتی پیروز میشدن چه میکردم خلاف تورانیان و دیگر همسایگان ما که وقتی پیروز میشدن همه چیز رو میسودند و همه چیز رو از بین میبودند این فرمان دوستمه ترمتن با آواز گفتان زمان که نیزه مدارید تیر و تیروکمان پلنگان زمان پیچت از کین خیش که نخچیب بیند به بالینفیش جوان مرد ترین اما در وقتی که پلنگ بالاتر باشه و شکار پایینتر باشه هیچ گفت او هم درمی و من خودم در هیچ درستالگی این رو آزمونی کردم یک بار در برنامه ها باز. بازم برد و پلنگ هیچ وقت در حقیقت کمین نمیکنه برای مبارزه با در حال شیر می دونی کمین میکن. و پنگ از پوشت تی رو حمله نمیکنه در حال که شیر از پشت حمله میکنه. اینجا فردوسی از زبان رستم میفر که پلنگ آن زمان پیش از که این ن که نخچیر مینه و بالین خویش وقتی که چه کار اومد؟ پلنگ نشسته ای نخچیر بدون خبر به بیا با سر اون پلنگ به کاری نداره. یعنی شما دیگه به طورران هم کار نداشهد. جالب اینه که افزندازان اینجا چه چیزی؟ افتودن به کوشید و شمشیر و گرد آورید هنرواز و بالا با برزین درست خلاف و گفتار رستم رو افتودن اینجا دوباره میگم تن به با آواز گفتان زمان که نیزه مدارید و تیر و کمان حلنگان زمان پیچد از کین خیش که نخچیر بیند به با همه جامعه رو بیرون کنید همه خوبخاری برسوم کنید یعنی به تو هم کار نداشته باشید. اینجا مردامی بله سوی شهر ایران نهادند روی سپاهی پهآن گونه بارنگ و بوی چه آگاهی آمد زرستن بشاه خروس آمد از شهر و از بارگاه از ایران طویره برآمد به عبر که آمد خداوند کوپال و کو گبر یا ببر ببر بیآمد دل شاه شد چون بهشت برین همی خام ب کندگار آفرین تا پی بردند پیش بجنبید که خصوص از جای خیش جهانی به آوین شده آراسته آزینه یعنی در دشت چیز بودادم میا رود و راه مشکلو خاسته تن تن شد تاج دید جوانی جهانی جهانی سرو دید فرود فرو برد پیشش نماز بپرسید خسرو زراح دراز گرفتش با آخو در شاخ تنگ چونین تا برآمد زمانی درنگ همی بود یک با می به دست از او شادمان تاج و تخت و مشست سیخونهای رستن به نای و برود بگفتند و پهلوانی سرود استاد گرامی جناب جنیدی با سپاس من تنهایی های جرف درم را با شاهنامه تبدیل به شور و شادی میکنم شاد باشید و میتوارم شاد باشید و چه آثاری درود و به استاد گرامی جناب جنیدی چه آثاری در دنیا قابل قیاس با شاهنامه هست سرانت است؟ زود بر فرانک با شوانامه هیچ چیز رو نمیدونیم مقایسه کنیم شوانامه خورشید رخشان آسمان و فرهنگ جهانه. وقتی که با این افتود یار کنار بگذاریم و خود شوانامه رو بخونیم و بعد راز رمزار اون رو بشکفیم میبینیم که هیچ کتابی در جهان نیست که بشه اون رو مقایسی کرد با شوانامه. سلام زازران اسمه روستاست این نام یعنی چه؟ زنده با آتفریدون جایدیه بزرگ شاید باشه این راند پی... در که در شمران و در تهران و در خیلی جاهای دیگه هست و زاد راند بیشتران مخصوصیم که زاده دیگه زاد راند جاگاه زادن مثلا اگر بگیریم اعتماد داده زاد هم خودشیه یک, بخ... یک بخشی تغییر یافتهی از یک نام جاگاهی بوده باشه با درود تنها راه پیش رفته تناره پیشتخ این است که دانشگاه ها از خرافات دربی زدوده گردند با عرضی بهتری این ها بدرود شاد باشید البته این کار دانشگاه ها این کار بکنند که قابحال نکردند موفق فکر کردیم که بعد از این انقلاب پیشه و انقلاب فرهنگی در این را که برخواهیم داشت و متاسفانه اینطور نیست یعنی ننگ بالاتر از این نیست که کسی بخواد دکترا ادبیات بگیره یعنی اول باید انگلیسی رو امتحان بده این آخه یعنی چی؟ یعنی اگر سردی بخواد بیادم روز مثلا دانشگاه ما نه تباید بتونه بیاد به این ترتیب این برنامه ها همطوره دوما پیدا کرد اما خب ملت ایران آگاهی از خودشونشون میده و امیدوار هستیم که ما بیاری هم این کار رو بکنیم دانشگاه های خواب برده ما خود بودم بیدار بکنیم بدونن که با با سلام آفرین به شما و این برنامه خوبه من در انجمن شعر و هم برنامه شما رو معرفی کردم سید خسین سالهی قه فرخی از شارمحال شارمحال شارمحال و قه فرخ ایشون درست نمیشته من دیدم در بعض از نوانگوزاری ها که گردم گفتن اینجا قهوه خانه رخ بوده نه چمین چیزی نیست اصلا این قه به معنی قناتی که در واژه قهستان هست و در واژه قه و قهریز هست یعنی قنات فروخ کاریز فروخ جوی که کاریزی شدم در آواز در فرخ و فروخی آب اومده و یک جای خیلی زیبایی سرزمین خیلی زیبایی از اون ساختن درود من به قه فروخیان نه یه سوال هستش که حالا میپرسن بعضی از دوستان من تو پیومکای روزهای فرد اینجام دیدم این سوال خیلی چیزیه من باید میخونم براتون سلام من خیلی برنامهتون رو دوست کنم رسپند فرمه شاهنامه واقعی هست یا نه الاهه از چی هست خانم این چه سوالی وقتی وقتی که وقتی در شاهنامه میبینه که سخنگویی و سرمه های بزرگ جهان و رام کردن جانوران و ساختن کشتی و دارو و پزشکی و جدا بودن پزشکی از, از این به تو گوش کنید خواهش میکنم پزشکی یا درمان هر دردمند در تندرستی راه گذن راه گذن بیماریه دره تندرستی یعنی بهداشت شما فکر میکنید چند زمسور پیشینی وکان ما اینو فهمیدن بهداشت غیر از پزشکیه امروز جهان به این نتیجه رسیده. چطور فکر کنید که اینا واقعی نیست. همه واقعی و تاریخ درست جهان آریایی باستان و ایران البته. بفهمید. ادامه باستان. اینجا یک بیت هست که یعنی یک بیت بود که سخنهای رستن به نای و گروت پهلوانی سرود. یعنی اینکه رودات بزرگی که اتفاق می افتاد اون وقت خونیاگران یا کسانی که نوای خوش و بوسیقی سرکار داشتن اینها از اون داستان ها آهنگ جدیدی می سختن. و نمونه زیاد داریم که بر اساس داستانی رویداد یه داستانی مثلا مرگ شبدیز وقتی که خسرو دوم که نام خصرو پرداز بهش دادن شبدیز رو خیلی دوست داشت پیکرری شبدیز در تااقستان همان هستی اصل خیلی خوبنه بوده. و این شبدیز بالاخرهنش به جایی رسید که بیمار شد و یک نزیب مرگ شد و خرو گفته بود که اگر کسی خبر مرگ شبدیز رو به من بده من اون رو میکشم و شبدیز تو هم مرد و هیچ کس چاعتت نمیکرده یعنی بر و این رو این خبر رو به خصوب بده. دست به دامن بارباد شدن باربرد یه آهنگی ساخت حالا اون آهنگ چیه؟ حتما یه گونه از این چیزیست که امروز بشمیدن سمفونی قطعا شیحه اصبوده تگه اصبوده و حرکت اصبو اینا رو که میتونستن با سالتها مختلف با ضرب و تنبک و تبییره بعد کم کم صداها آروم میشه آروم میشه تا وقتی که مثلا یه نالهی بیاد و همه چیز تموم بشه نشون بده که بسرور مفرسه مگر شبلیز مورده و بار باید باسه موزه شاهنش مودند یعنی کسی بهت نگفت کسی نگفت بخشی خب این, این خود همین داستان نشون میده که در این چیزی که امروز میگن سمفونی به سمفونی بوده و با گفتار و با در آوای موسیقی میتونستن یک رویدادهایی رو با هم دیگه بگن یا حتی در این مرگ شبدیز قطعا دیگه هیچ گفتار نبوده. همش آوا بوده و این یک سند هزار و تقبیل پونست ساله است از نخستین سفونی که در جهان ساخته شده. امیدوارم که موسیقی ما توجه بکنم که این چه پایه و مایه از این عجیبی داره. تا هر صورت این بیت آخری این بود که سخون های همی یه کفته با می به دست از رو شادمان تاج و تخت نشست سخون های روستن به نایو گفتند بگفتن برپشتبانی. سرود بخش بعدی داستان دیگر است اگر شما میخوایی که یا تلمان بشه ویدیو اگر اجازه بدید میخوایی بخش اون داستان رو شروع کنیم چون 22 و 24 هست من میدونم چون ما چه فکر میکنه که الان کنیم کنیم کنیم کنیم پرامک های زیادی اومده اگر مایل هستید این پرامک های بله بله بله این بخش در داستان تموم شد یعنی تو این بخش تموم شد خب پرامک های میخونیم بذارید فرصت خوبی هست هم بسیار زیاده شرمنده نباشیم شما برنامه خوبی دارید درود بر استاد عزیز من چند جلسه چند است که برقی شما رو میشنم ولی احساس میکنم هویت از و هفته خود را پیدا کتایون نص اللهی اون رو فرستادن دو روز بر کتار بعد. بعد آیا خاصگاه پارس و آذربایجان بوده است و در شاهنامه آیا که خسرو نماد پادشاهی آذربایجان است؟ برایکه خسرو در آزربایجان در تمام در شاهنامه اومد ما اینجا خوندیم که در نزدیکی دریای چیچه دریای زیبایی که داره به خشکی میگیر آید متاسفانه و شروع وقتانه پایتخت که خسرو اونجا بوده و در ربایت پهلوی بسیار داریم که یعنی در کنار دریای چیچه است که خسرو این, این رو از خداوند خواست و این نیاز رو کرد و این کارا رو کرد و که خسرو در کده آزرگوشت رو می آتشکده آتیش کده آزرگوشت الان در تخت سلیمان واقعه تمام اینا نشون می‌ده که که خسرو پایتختش آزرگوشتان بوده از طرفی در چنگ نوشته های ما آشوریان از قوم پارسوماش در کنار دریای چیچست یاد می یعنی همین دریای ارومیه. و خب معلومه که نخستین بار نام پارس آورده شد در جان بوده. یعنی آزربایجانیان میخصستیم کسسان نیست هستند که با نام پارس ازشون یاد شده. اگر چه دشمنان ما اکنون واژه پارس رو دیگررگوونه تاثیر میکنند میخوام میخوام خودشون رو جدا بدونن اما ما نه تنها واجهه پرس و ماشر و پاررس و در نوشته های دیگران داریم پای تخته که خصوص ن یکی بوده و در شهر باستانی اردویل هم ماهنوز یک بخش بزرگی داریم به نام پاررس نخستین پارس های جهان در آزربایجان بودند. بعدن اینها مهاجرت کردند کردن به طرف جنوب کشمه دروت بر شما من یادمه 25 سال پیش وقتی کودکی 8 ساله بودم منزل اقوام جمع می شدیم منزل امه من جمع می شدیم و بزرگترامون آهنگوار داستان کلوگوی بهرمان آذربایجان رو برای اون می و می خوندن. که مثال رستم برای م... فارس خواست آوازاده از اردبیل دروند به اردبیل ارد و ویل شهر ارد یعنی شهر پاکی و روستی. این اردبیل در اردتا پیشوندش که در امستاد اشوانگوی یعنی برترین راستی بهترین راستی این ارد در اردستان اردکان اردحال اردقش در همه اینا هستش و نشان از همون برترین پاکی و که وی هم یعنی شهر به زبانه،, زبانه ایرانی که به همین صورت به زبانه اروپایی راه پیدا کرده با درود فراوان در مدفعات رامری رام ری، به معنای دانستن و به یاد داشتن است که آیا این فعل با فعل انگلیسی remember به معنی به خاطر آوردن از یک گیشند به درود پاینده باشید معانی اگر مترادف هست بفرمایید درست زبان های اروپای همه ریشه در ایشان دارن منطقه هم اول این برنامه من عرف کردم که اونا ریشیابی های دروغ از خودشون دروردن و یک گونه زبانشناسی دروغ رو بله این هر دو هم از باجه های دیگه که در انگلستان یا فرانسه یا آلمان یا ایتالیا هست و اینا همه ریشه در زبان های ایرانی دارن دروغ بر عوامل راژیو فرهنگ و میهمانی گراغتون استاد جنیدی بیشه کلمه جیگ را میخواستم بدانم با تشکر حمید هستم از سرزمین زنده بود شاد باشید شاد و فیروز باشید بعضی از این با نام ها به قدری به قبر گذر روزگار خلوصه شده که سخت ما بتونیم از اون نام بیاریم مثلا فرسون که در شهر مرکند و مرکندو در سلمانی غربی و سمرکند ببینیم این مرکند هست و پیشوند سه مرکند یه سه اومده که از بس کوهند شده و سایده شده، ما نمیتونیم بیان کنیم که این سه چیه احتمالاً جایی احتمالا پیشوند همون حرکت گاه و همین گاخ و درگاه این سال در مورد شخصی نام احمد ابن حسن نیمندی و دیر با کفایت محمود غزنوی که ظاهراً در تاریخ به او یکی از دوستان خوب حکیم فردوسی خانده و دوبومی سوال هم در مورد قاتل قباد فدر عروسی و حوال شخصیتی ما با سپاس بدن... از شما شاد باشید دیگران رو هم شاد کنید پاشوکی هستم از شان درود بر شما قاتل قباد به گهان من خودش بود یعنی پادشاهانی که باستم پادشاهی میکردند. منطقه قباد رو انوشی روان. پس از این توتایی که برای ما کردن شخصا از کار برکنار کرد این توت در شما هم آمده و کشته نشد یک بار رو گرفتند در خیزشی که ایرانیان کرده بودند، وقتی که شخصهای یا سخرای یا سخرای پهلوان بزرگ ایران رو در زندان بر بی،, بی گناه کشتن. اون وقت می که ایرانیان خیزش کردن که خیز شهر خیزش اینه که از ایران برخاست کرد همین هر کسی کرد ساز نورد و آهند روستند برفتند یک به ایوان شاه، و بعد و فریاد به و آهند پای خوادس فر را نجادش نکردند یاد کسی که بر شاهبلگوول بود بر هم بیشه بود گرفتن تو بردن در ضگان کشان شام توجا ماست جستن چند دیین برادر خچی که قواد رو به فکشاه میشونن ولی قواد رو میدن به پسر سوسا تا انتقام پدرش رو ازش بگیره. موتو اون پسر بسیار مرد نیک انسان وارسته بود این کار نکرد و قوات رو نشاد داد قواب دوباره به ایتااللیان پناه برد بالش کرد به ایران برگشت و دوباره پادشاه شد. و خب میبینیم که بعد از اینکه امکان نمیخان به مزدک ارانو مزدک و مرد بزرگ میخواست که ایران رو با اندیشه های نیکو از راه فرهنگ نجات بده که نگذاشتن و همه رو خوشتن و ایران رو هم باد دادن وقت انجامن بودام که پشتیبانی کسرا بود و خود کسرا قدرت رو برکنار کردن با درود خدمت حساب جنویدی و موجودی محترم آیا رستم پسر دیگری جز سهراب داشته و بیجن پسر کی بوده آیا فرزند داشته با فرشکر عباس محتوی شهر بابک درود به شما و شهر بابک بیجن فرزن کیف بود و جلگاشم در خراسان بود, در بود. و شهر بوجنورد یعنی بیجن کرد پایتخت بیجن بوده و رستن به جز سهراب فرزند دیگه داشت به نام فرامرز واژه فرامرز فرامرز یعنی کسانی که آماده جنبش و پیشتازی در جنگ است سخراب سرخابه صحر، یعنی یک جای بوده که آب سرخ کرد و در بعد کتابای ما سرخاب اتفاقی دوستی کوردی داشتیم که به من گفت که اه محبت به امیر بزرگیشی که بعدن اینا رفتن به اصفهان و بعد اسم بچه‌ش رو سرخاب من همیشه به خودم فکر کردم که چرا باید یه مرد ایرانی اسم بچه رو بذاره سرخاب؟ falam که یعنی سرخاب یعنی سهراب، سور به زبان کردی یعنی سرخ هستن و باج سهرورد یعنی جوی که خاکش قرمز است. من اکس هوایی سهرورد رو دیدم خاکش قرمز. سور و سرخ هر دو یکی. درود استاد تیر به چه معناست و از چه ریشه چون ما در منطقه ما کوهی به این نام وجود دارد محمد حسن اسماعیلی از خورمه استان فاس. درود به خورمه و درود به پارس تیر در زبان عربی بوده تیشتریه در زبان پهلوی شده تیشتر و در زبان فارسی شده تیر این یک معنی عمومی تیری که در حقیقت نماد باران و ستاره باران بوده و در تیشتر تیرگان جشت میگفتن بهش. اما این تیر اعتمالا یه نام باشه. مثلا فرض که مثل تارم که تار داشته باشه به این معنی باشه. باشه شما، است جنگگی بودم که ایران باستان فرسفه نداشته چند را از گزارش استاد شهری درباره دانش در ایران باستان یاداش کردم یک گزارش یک رومی از بودن دانشگاهی در که در اون و دو گزارش از بودن چونی در سر ایران 3. آمدن نام بازی گزارش و گزارش اون در یونانی چهار آمختن دموکریتوس را از در معبد و فلسفه رو از اصدادان ایرانی دقیق 20 سالی که در بابل بوده دیدگاه استاد رو جویا شدم مخواستم بودم اصداد توس برای استنساخ شاهنامه چه تبدیلی اندیشته بود درود بر شما جاوی دیرم زمین بهرام اصم از ایلا درود بر شما خیلی باشتاب گفتید درود بر شما خیلی باشتاب گفتید برشتاب شما که این گفتارهای باشتاب رو جمعالی کنیم بینام فلسفه ما در ایران نداشتیم چون فلسفه عبارت بوده از اینکه نامی که یونانی بوده ما دانشمن فقرات گفته، فیلو سوفیستیم یعنی دوستار دانشستیم دانشمند نیستیم و بعد با این گفتار یه ای چیزها رو گفتن که واقعا انسان ما میمونه که این یونانیان چیزها خودشون رو به دروخ مشغول کردن و نامون رو فلسفه مثلا یکی از این کسانی که است. ثابت کرد که حرکت در جهان وجود نداره. تحلیلش هم این که ما وقتی بخوایم از یه جای به یه جای دیگه بریم یه مقداری به نیمه رسیدیم یه مقداری زمان میگیره. اون باز بخوایم نیمه کنیم باز یه مقدار زمان می، میگیره. باز اون یکی می‌تو اخر تا اون پایان هیچ وقت اون نیمه تا باز یه نیمه دیگه داره. پس نگرانی ما اون به ما. هیچ وقت به مقصد یعنی حرکت وجود نداره. این یه این یه یک... یکی از باخشوی فرزندی یونانیه. از شهر خودش بلند شد سبار کشی شد اومد با آتین تصابت کنه حرکت وجود نداره خب این چه دانشی واقعا این چیه که جوهان خود شد کرده به این اون یه فیسا خورست بعد بله خب معلومه که دانش ایرانی رو فرا گرفته ما مدارکی داشتیم که دو هزار سال پیشتر از فیساگورس در حقیل جهازیات داشتیم و اینکه که جهان داره خودشو گول میزنه میگه که فیساگورس اینها رو کرده یا همی مال اقریدوس و اینا همه گول زدنه در که ما پزشکی رو 4850 سال پیش در ایران داشتیم که مغزه دختر رو درمان کردن و دختر زنده باقی مونده بنابراین ما پزشکی را از یونان یاد نگرفتیم اگر اونا یاد گرفتن گرفته باشن اما مقصود از فلسفه خود دانش فلسفه یعنی دوستاری دانش به ترتیب یونانی و اون گمراهی هایی که یونانیان داشتن در دا ایران نبوده هرچی بوده چراغ روشن دانش ایرانی بوده سوالات بعدیشون هم تقریبا هم نو گفتم دیگه من آه. دیگه دوشتر نمیخوام بارد بشم و پاسخ بدم همین اندازه کافی درود خدمت استاد آقای هدهتی و ایک خداقوبت جانانه به خاطر تلاشتون برای ایران عزیز روز کنید بفرمه چه فیدوسی از رمز در شاهنان استفاده کرده فدوسی وقتی که گذره جوزگاران بر داستان ایران میگذاره کم کم خواهی نخواهی کرد وخواک روزگار و گذر روزگار امواجی که از روزگار باقیمون مقداری از این رو در رمز فروت می‌بره، فرود میبره خواهی نخواهی مثلا وقتی که کشور ایران در زمان تسلط بابلیان دو تا آتش بشون درش شروع بکنه به فعالیت حالا اگر این کشور تبدیل بشه یه شخص به نام زهادب بنابراین این دو تاتششان تا باید تبدیل بشه به دومار روی دمام دو بیاد رو دوشانه زهخ. این خاصیت زمان درازیش چند هزار ساله چند ده بعضی از رویدادها چند ده هزار ساله بوده و خب به خلای گذاره اینا رو به صورت رمز در میاره و فردوسی در آغاز خودش میفرمد که تو این را دروح و فسانه مخون به یک سون روشن زمان مدان از او هرچند چند در خواهد باخرد دیگر برای بر رحمز منی برد من شد سر برند. با عنوان فرزند فرزوسی که بعد از هزار سور از شانومه رمز کشوهی کردم رو شما با چشم خرد ببینید اگر پذیر افتید متوجه میشید که درسته و گذر روزگار گذر روزگاری که چند هزار ساله بعضی شیزار رو به صورت رمز برمیارد سلام ما در گسته های استان بوشه به گردنه های کوچک کوه و تلها تلهای بلند مازه میگویم آیا با ماز یکیست؟ آفرین من این نمیدونستم حالا در نمیش بعد از این خواهم گفت که بله ماز و مازه یکی است. با دروت و خسته آیا نانی از سنگسر در شاهنامه آمده با سپاس اسکرنریان از سمنا دروت بر شما و من که خودم سنگیسر بشرف دوست دارم و دوست در نمان شدم از امیه سنگیسری بزرگترین با ج ایران رو در حقیقت فراهم کرد با باجه های و اکنون در سنگسر آقای پاکسادیان شخص سخت و خود کار هست و دختری از بنیاد نشاور داریم به نام نقمه داره کار میکنه و سخت و پا تلاش و کچی هستن مانند نیاکانشون که با اون سرخوها و اونها در بالا. در حساس سنگسر یک همون سرس اما نه نام از سرخوها در شما برنگ من روزهای یکشنبه واقعا احساس سرزندگی میکنم و وقتی صدای پرتنین و زیبای جناب جانایدی رو میشنوم احساس میکنم که اصلا ایشون از درون شاهنامه بیرون اومدن و وقتی این اسامی زیبای ایرانی رو مثل است مثل گیف، مثل بقیه اسامی زیبای شاهنامه واقعا لذت میبرم اصلا از تنین این اسامی همزمان احساس غم به من دست میده که چرا من خودم را می کنم بایستی قفت کرده باشم راجع به تاریخ میهن عزیز و زیبایی های شاهنامه به صورت من امیدوار هستم که اون باقی باشه و من بتونم در بنیاد میشابور خدمت کوچکی برای جناب جنیدی و همکارانشون بکنم و خودم هم بحقی ببرم سوالی داشتم از جناب جان و اون این هستش که آیا در بنیاد یا بیرون از بنیاد کتابی دو سراغ دارن که مختص اسامی ایرانی باشه به عنوان مثال اسامی که در شام نامه هست فقط ایرانی اگر ایشون میتونن مجایی رو معرفی بکنن من خیلی خوشحال میشم که این کتاب رو تهیه بکنم مثلا از خوندن این اسامی زیبا شرف به من دست بده من رضایی هستم از تهران درست بر شما آقای رضایی من از شما تقلیده میگنم که به شما بگم جناب رضایی میکنم که نام خیلی بهتر از اینکه که جناب پیشش بیاد در صورت امیدوارم که این احساس پاک درست خوبتون از رضایی شنبه به همه هفته و به همه زندگیتون منتقل بشه و همواره سربلند و خوب باشید ما در بنیاد نشابور یک کتاب چهار کردیم از استاد حسین شهیدی مازندرانی بیژن نام های است فرهنگ نام های شنامه این کتاب مدتی است که نایاب شده. اگر خواسته باشید میتونیم در بنیاد میتونن براتون کوفی بگیرم و خخواهی نخوا چاپ دومی از این هم در پیش خواهد بود. کتاب خود دیگری هم هستش که نام های ایرانی ما در تتاب بنیاد داریم که نام های ایرانی فرهنگهایی است که به شما عرضه بکنن امیدوارم که این شادی و این رامشتون و این تون به همه روزهای هفته و همه روزهای ما به همه زندگی شما و همه ایرانیان به هفته خسته بشه علت اینه دیگه گرفتاری هایی که بعد از عطابکان و حمله مغول و صفویان که اصلا به فرهنگ کار و قاجریه که اصلا غیر ایرانی بودن درش می پیشینم که پدر خودش انگلیسی میدونست دونست پسر خود آنجا می میدونست خب توجه به این موضوع نکردن فقط همین تو خونه ها بود پدر بزرگها اونم شاهنامه رو با اسودها می خوندند. خب حالا همین این احساس در زندگی در همه ایرانیان با امیدوارم که به همه گستر ایران معتقد بشه و همه ما با شاهنامه و افتخارات و روشنی های زندگی نیوکانون زندگی بخوریم. پیامتی که اومده این هستش که اه... م... آه. اه... سلام از استاد بزرگ در شما موجود محترم تشکر کردم. عشق در چه جنگی با روستن برو برو شد سامان ازی است. درود بر شما در اون که ایرانیان در کوه هماغان شکست خوده بودن و روستن به نیاری ایرانیان میاد و در اونجا می اشکپوس میاد بیرون و همآورد میخواد از ایران روحام روحام نماد بلوچستان و پشتونستانه ولی چون که پسر گودرزه این نشانه پیوند نژادی بردوشستان و پشتونستان و با کوردستان هست روحام میره به جنگش منطقه طاقت و پایاب اشکوس رو نداره که به طرف کوه می کنه و در اونجا میبینیم که از قلب سپه اندر شوف توس دارد اسب بایدت برای اش اووس باقی شفت و با تووس گفت که و هم جانان با دست جفت به بیا در همین تیر قضی کند میاده ی همصففر آاضی کند یعنی در جشن عروسی شراب خورده و داره رقص شمشگیر چندی پیشما این رو بیان کردیم و پماکن برای ما اومد که در آزربجان خوختان هنوزی هست در سیست تا هم گفتن هست من گفتم بله سیستان نیزم امیدوارم که این کسانی که این رقصو میکنن. این ادامه بدن و گسترش بکند به حس تتا براش شد که با توس گفت که روخام را جمع و با دست جفت به میده همی تیغ بازی کند میانه ال سرفرازی کند تا قلب سپه را با او این بدار من اینک پیاده کنم کاردار اومد و با یک تیر کاراش گستر ساخت در استاد جبیل فخر ایران خواستند سحال بکند شنگان در فردوسی کجای خراسانه آیاس برزو اگر پسر سوراب نیست پس برزو چه شخصیت است علی امیدوار از اوچان دبیر بازنشسته متشکرم از تمام موجیان برنامه شما خدا پیست. شما امیدوارم که یک روزگار با با تدریس به فرزندان ایران پستر گذاشتید و الان با آرامش صورت همه شنگان همونطور مثل سنگسر نامش در شانومن نیمده، اما گاه نفسمندش جایگاهه و شنش در چندت و در سوسنگرد و در خیلی جاهای دیگه میبینیم که هست شن اصولا شن به معنی جایگاهه گون هم به منی گاه این درست برقب تر... در ترجمه جایگاه جای هم جای به منی گاهه هم گاه به منی گاه جایگاه شنگان این این مری داره ولی در شانومه نایمده برزو این ها هم دیگه نام... نام هاییست که در شانومه هایی که دیگران سرودند رو به فیدوسی اختباد نداره نامش آمده تعداد زیادی تیامه پر... کمانده و شماره تماس خواستند من ا میکنم خدمتتون بنیاد نمیشون اون شمارش 8۸ دو نه 8 هست دو تا دو تا صد ۸ و هست. دوتا این شماره تلفن بل اشاور است اگر می خواهید ارت کیننسات کنید. دوستا جونهی دارید بپرسید یک دومگم امروز از خودم کم میکنم چون استاد بین صحبت هاشون گفتن من گفتم جناب نباید میگفتم جناب متوجه شد خودم کم میکنم خب اگه آفرین از <تصفح> و برنامه شما دید ما نسبت به شاهنامه تغییر داده سپاس گذاریم از شما امش... شاد باشیم درورد در استاد و جناب هدایتی این که میگن خشم فریدون یعنی چه؟ در شوان همه نایمده ولی خب در اخرت اون دو فرزند وقتی که نامردو میکردن و برادر خودشون میخوشتن فریدون هم برنگیخته شد و میبینیم پی بعدا منو چه این انتقام رو کشیده من از جناب استاد بپرشتند که نام مادر اسپندیار چی هست در شاهنامه خیلی بچکر در افتوزها نام مادر اسپندیار کسی ها آمده در متن شاهنامه دقیقی که پیشتر گذشت نام دیگری اومده که من اکنون اون نام رو یاد ندارم ولی یادم خواهد که نام رو با بیتش و در برنامه آینده به نظر شما برسونم با عرض سلام خدمت استاد گرامی و مجزی عزیز میخواستم کمی از نجادگی و پهلوان گیل پهلوان اومده گیلان صحبت کنید و پیشینه گیل مردان را بفرمایید رامین از وایجا شاد باشید من فوهن یه دارم که استاد مردر آواز ایرانه و مرتباً گیل از من میکنه یکی شما این چیزایی رو که میگه که تلفظش در میشه و خلاصا درسته این همه در گیلان هم هست همطوره مثلا نفس کنید که سیر شدن رو بگن سیر در گیلان. و چما چرا ایران رو نمیگید من گفتم به دلیل که زیاد خب من زبان گیلانی نمیدونم ولی این متعلق به همه فرهنگ ایرانه و گیر مردم ما هم درود برشون که هنوز آین پهلوانی باستانی رو دارن و کاری به این دگر هایی که در ورزش اتفاق برشته ندارن و با همون آین با همون کشتی زندگی خودشون ادامه هدارون نام روستایی در اصفحان به چه معناست؟ خود ونداد یعنی پیروز در نام ماهونداد ونداد ما داریم و ونداد داریم و جشه ون یعنی پیروزی در عوستا ونان پیروزی همون نام یکی در انگلیسی تبدیل شده به وین بنابراین ونداده ممکنه که قسمت آخرش اگر ده باشه قسمت اولش پیروز باشه برد آقای چند هزار بار پیامک بدم درود بر شما و استاد جنیدی نام پوریا به چه معناست است؟ از مشهد. شاد باشید خوب پور معلومه که یعنی پسر دیگه با پسند آ پوریا مونتا این به ویژه نام یک مرد بسیار بزرگیست که خواهید قوت زخنه رو گوشده و به عنوان یکی از پهلوانان بزرگ ایران باید ایران نامش زنده است ولی که خیلی دستان داره که می بینم شما به ساعت دارید نمیتونم بعدش، براتون بگم مرد بسیار بزرگی بوده هلیار یعنی یار بزرگ ایرانی بوده سپاسگزارم از شما آسای جونه ایگوی برمانده نواشید تا از مانده نباشید با معده با نمره 19 و یه دون آفره یه دون آفره خوبه نخواست گذارم چند تا پرامکار تعدادی زیادی از پرامکار شما رو من نخوندم من فقط دو سه صفحه رو باز کنم اینی که خوندم از قبل شروع کردم از اولین پرامکاری که اومده اون رو خاندم و تلفون هایی که مانده از شما به شرمنده هستم نمی در برمان مدت زیادی هم از کسان سوالیم به خوندن پرامک سوالات شما و همینطور تلفون های شما از جفای جان درود می به همه کسانی که پیامک ندن یا تلفن زدن و ما به علت تنگیه تمام نمی باشیم باشون مطمئن باشین دیل جان روان من با شماست صداورداران برنامه علی تاهری نورالله هیدری تقیی کننده محمد جزاهاش هیدری پخش آی. کازمی، قاسمی، رای مهدی ابراهیمی، همه برنامه منش و ارتباطات صحبا به ستایشمنش، و احناز کرمی، مجدی و سردبیر برنامه، همه هدایتی را. زنی هستم پنجاه سال از اسواحان زیبا دوستار برنامه بی همتای شما. زندگی سه لحظهش برای من زیباست. خندیدن مجری شما، شنیدن صدای کارشناس شما، نیرو گرفتن خانواده ما از برنامه خوب شما. دروود به شما و به خانواده خویشما و به خانواده ایران. سپاسگزارم خدا رفیق ایرانیم.